یک جوغم ایام نداریم خوشیم یا چاشت با شام نداریم خوشیم چون پخته به ما نمیرسد از مطبخ از کس هم خام نداریم خوشیم یک روز زبند عالم آزاد نیم یک دم زدن از وجود خود چاد نیم چاگردی روزگار کردم بسیار در دور جهان هنوز استاد نیم یک دست به مصحفیم و یک دست به جام گه نزد حلالیم و گهی نزد حرام، ما این در این گنبد پیروز را خام، نه کافر مطلق نه مسلمان تمام. از من بر مستفا رسانید سلام، وانگاه بگویید به اعزاز تمام، که سیده هاشمی چرا دوغ ترش در حلال است و می ناب حرام.